با سلام به شنوندگان خوب افثانه های صوتی از سری داستان های مجموعه های ایرانی با داستان دیگه ای در خدمتتون هستم که امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید اسم این داستانمون هست داماهی داماهی یه جور ماهی ای بزرگه یکی بود یکی نبود زمان خیلی دور پادشاهی تو جزیره زندگی میکرد که آدم ظالم و زورگویی بود و شادی و خوشحالی رعیت را رو نمیخواست. جزیره ای که این پادشاه زندگی میکرد یه جزیره آباد و سرسبز بود و خاک و تپه های رنگ و قشنگی داشت. اسم این جزیره جزیره خرمزه. پادشاه یه دختر خیلی زیبایی داشت که مخالف کارهای پدرش بود و برعکس پدرش خیلی مهربون بود و همیشه به مردم فقیر کمک میکرد. دختر پادشاه هر روز با کنیزاش میرفتن به ساحل دریا اونجا مینشستن و امواج دریا و کار ماهیگیرا رو تماشا میکردن پسر ماهیگیر فقیری که تو جزیره زندگی میکردن تعریف دختر پادشاه رو خیلی شنیده بود و عاشق مهربونی و زیبایی شده بود ولی از ترس پادشاه ظالم که دشمن رعیت ها بود جرأت کرد که دختر پادشاه رو خواستگاری کنه چون میدونست که با این کار سرش رو به باد میده یه روز غروب که دختر پادشاه تو ساحل نشسته بود یهو چشمش به پسر ماهیگیر افتاد که اونم تو قایقه نشسته بود و داشت واسه خودش آواز عاشقونه محلی میخوند. پسر ماهی گیرد یه مقدار از خاک سرخ جزیره رو برداشت و یه دونه مرواریدم برداشت اونها رو داخل یه قایق کوچیکی که خودش با دستش ساخته بود گذاشت و اونو به دریا انداخت تا به دست دختر پادشاه برسه. کنیزا، قایق کوچیک و موروارید را و به دختر پادشاه دادن. دختر پادشاه روبندش را رو از صورتش برداشت و روی خاک سرخ جزیره گذاشت و قایق رو به دریا انداخت تا به دست پسر ماهیگیر برسه یه مدت از این جریان نگذشته بود که پادشاه از علاقه اون پسر ماهیگیر به دخترش باخبر شد و به سربازش دستور داد که اونها رو بکوشن. پسر ماهیگیر و دختر پادشاه از اونجا فرار کردن. ولی سربازا اونها رو تعقیب کردن تا اینکه به ساحل دریا رسیدن. پسر ماهیگیر و دختر پادشاه نمیتونستند از دریا رد بشن. سربازا هم داشتن هر لحظه به اونها نزدیکتر میشدن که یه دفعه داماهی همون ماهی ای که بهتون گفتم به ساحل دریا نزدیک شد و پسر ماهیگیر و دختر پادشاه رو بلعید و با خودش به دریا برد. پادشاه و سربازاش سوار لنجهاشون هاشون شدن و دنبال داماهی رفتن. اما داماهی با حرکت سریع دمش امواج خیلی بزرگی تو دریا ایجاد کرد که باعث شد پادشاه و سربازاش غرق بشند دو ماهی پسر ماهیگیر و دختر پادشاه رو به ساحل رسوند و اونها را از مرگ نجات داد بعد از مدتی اونا با هم عروسی کردن و سالهای سال با شادی و خوشی در کنار هم زندگی کردند از اون موقع به بعد بود که عشق و شادی و صلح و آرامش به جزیره هرمز برگشت امیدوارم که از داستانمون لذت برده باشید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها. قصههایی هایی از غول ها و کوطول ها ماشره از جادوگرها،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 کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسان صوتی.